دوم افراد باهوش چگونه باید به نظر برسند معمولا وقتی کتابی را نمیفهمیم آن را بسیار هوشمندانه نمیپنداریم از همه اینها گذشته عقاید ژرف را نمیتوان به زبان کودکان توضیح داد با وجود این مرتب دانستن دشوار بودن و ژرف بودن را میتوان جلوه از انحراف در سپهر ادبی دانست انحرافی که در زندگی عاطفی با آن آشنایی داریم، یعنی وقتی که افراد مرموز و مبهم و نه افراد قابل اعتماد و روراست، میتوانند از هان ساده دلان را به احترام وادارند. مونتنی بدون نگرانی سراحتاً به مشکل خود با کتابهای مرموز اقرار میکرد. نمیتوانم با آنها معاشرتی طولانی داشته باشم، من فقط کتاب های ساده و لذتبخشی را دوست دارم که علاقه علاقم را ارضا می کنند. نمی توانم برای چیزی حتی برای یادگیری به مغزم فشار بیاورم. هرقدر میخواهد در زشمند باشد. از بین کتاب ها فقط طالب آنهایی هستم که با فراهم کردن و اوقات فراغتی شرافتمندانه به من لذت می‌بخشند. اگر در هنگام مطالعه با عبارت دشواری روبرو شوم هرگز مسترب نمی‌شوم. پس از یکی دو حمله آنها را رها می کنم اگر کتابی خستهام کند کتاب دیگری برمیدارم. دارم اجرای چنین نقشی از جانب مردی با هزاران جلد کتاب در قفسه های و دارای دانشی دانش درباره در فلسفه یونانی و رومی کاری بیمعنی یا بازیگوشانه بود اگر منتنی دوست داشت خودش را اصیل‌زادهی کند ذهنی معرفی کند که در هنگام مطالعه تفاسیر فلسفی به خواب میرود این کار او ترفندی هدفدار بود اشارههای مکرر مونتنی به تنبلی و کند ذهنی خودش راههای حساب شدهی برای تضییع درکی نادرست از هوشمندی و خوب نوشتن بودند مونتنی تلویحاً میگفت که دشوار یا کسالتبار بودن کتابهای علوم انسانی هیچ دلیل موجهی ندارد حکمت نیازمند واژگان یا دستور زبان تخصصی نیست و مخاطب نیز از خسته شدن سودی نمیبرد در صورت کاربرد دقیق کسالت می تواند معرف ارزشمندی برای ارزش کتاب ها باشد گرچه کسالت هرگز نمیتواند داور تمام و کمالی باشد و در شکل بدتر به بیتفاوتی و عجول بودن امدی می انجامد ولی توجه به سطوح کسالت می تواند مدارای در غیر این صورت افراتی ما را در برابر عراجیف تعدیل کنند. <Andrew> <äche> کسانی که در هنگام مطالعه به کسالت خود توجه نمی کنند، مثل کسانی که به درد بیتوجه هستند ممکن است به طور غیر ضروری در حال افزایش رنج خود باشند. خطرهای کسالت نابجا هرچه باشد اینکه هرگز به خود اجازه ندهیم از مطالب مطالعاتی خود خسته شویم درست به همان اندازه خطرناک است هر اثر دشواری ما را مخیر می‌سازد که از یک سو نویسنده را به دلیل عدم شفافیت نالایق بشماریم از سوی دیگر خودمان را به دلیل عدم درک مطلب احمق به حساب آوریم مونتنی ما را تشویق کرد که نویسنده را مقصر بشماریم سبک نوشتاری فهم‌ناشدنی به احتمال زیاد بیشتر نتیجه تنبلی است تا هوشمندی آنچه به آسانی خوانده می‌شود به ندرت به آسانی نوشته می‌شود یا اینکه چنین نصر دشواری نقابی است بر فقدان محتوا درک ناپذیر بودن بهترین حامی حرفی برای گفتن نداشتن است دشواری سکه تقلبی رایجی است که افراد تحصیل کرده به کمک تردستی با آن بر بیهودگی مطالعات خود سرپوش می‌گذارند و حماقت بشری مستعد قبول آن به عنوان پول واقعی است هیچ دلیلی وجود ندارد که فلاسفه از کلماتی استفاده کنند که در کوچ و بازار نامربوط به نظر می رسد. درست همانطور که در امر لباس نشانه کوتح است که به وسیله مد شخصی یا غیر عادی در پی جلب توجه دیگران باشیم در گفتار نیز همین گونه است. تلاش برای یافتن عبارات جدید و کلمات محجور ناشی از نوعی جاه طلبی معلم معابانه دوران بزرگسالی است. ای کاش می توانستم، فقط از کلماتی استفاده کنم که در لزال پاریس به کار می‌رود. ولی ساده نویسی شهامت می‌خواهد، زیرا این خطر را در دارد که کسانی که قاطعانه عقیده دارند، نصر فهم ناپذیر نشانه هوشمندی است، آن نویسنده را فردی کم بشمارند و مورد بی قرار دهند. این سوگیری چنان شدید است که منتنی نمیدانست اگر سقرات، مردی که به اعتراف اکثر دانش پژوهان دانشگاهی مقامی والاتر از دیگران داشت در کوچه و بازار فارغ از اعتبار و شهرت مکالمات افلاطون با جامعه سیاهش به این دانش نزدیک می و به زبان معمولی با آنها سخن میگفت. آیا باز هم او را تحسین می یا نه؟ تصویر مکالمات سقرات که دوستانش برای ما به عرص اند فقط به این دلیل تایید ما را جلب می کند که مرعوب تایید عمومی آنها هستیم. این امر حاصل شناخت خود ما نیست، زیرا این مکالمات از روالهای متداول ما پیروی نمی کنند. اگر امروزه چیزی شبیه آنها آفریده شود، ادده معدودی آن را ارجمند خواهند شمرد. ما نمی توانیم هیچ گونه لطف و زیبایی را که با گری برجسته پرتم تراغ و بزرگ نشده باشد عرش گذاریم. چون این زیبایی هایی که تحت عنوان معصومیت و سادگی به طور خود جوش به وجود می آیند، به سرعت مورد بی بینش و دانش ناپخته ما قرار می گیرند. آیا به باور ما، سادگی، خیشاوند نزدیک بلاحت و صفتی در خور سرزنش نیست؟ سقرات روح خود را با تکان طبیعی مردم عادی به حرکت در می آورد. دهقان همین طور صحبت می کند، زن همین گونه سخن می استقراها و قیاسهای او از عادیترین و شناخته شده ترین فعالیت های بشری گرفته شدهاند. هر کسی می تواند حرف سقراط را بفهمد. کلام او از چنان شکل آمی آم برخوردار است که اگر امروز بیان می شد ما هرگز اصالت و شکوه مفاهیم اعجاب آور او را تشخیص نمی دادیم. مایی که هر چیزی را که با فضل فروشی متورم نشده باشد بی ارزش و پیش پا افتاده می و مایی که هرگز از قنای اثری آگاه نمی مگر وقتی که با تمتراخ به رخ کشیده شود منتنی خواهش می کند که کتابها را جدی بگیریم حتی وقتی زبان آنها ترسناک نیست و آرای مندرج در آنها شفاف است و با تعمیم این امر اگر به دلیل ضعف مالی یا فرهنگی و تربیتی لباسهایمان ساده است و دایره لغاتی وسیعتر از دایره لغات دکهداری در لزال نداریم خود را احمق نبن داریم فوم افراد باهوش چه باید بدانند؟ آنها باید واقعیتها یا فاکتها را بشناسند و اگر نشناسند و اگر علاوه بر این آنقدر احمق بوده باشند که این واقعیت ها را از کتابی اشتباه یاد گرفته باشند نباید انتظار هیچ گونه بخششی از طرف دانشپژوهان داشته باشند یعنی همان کسانی که نظر آنها را به طرز مستدلی قاطعانه رد می کنند و با ادب متکبرانه اشاره می کنند که فلان تاریخ اشتباه است یا فلان کلمه به طور اشتباه نقل شده فلان عبارت نامربوط است و فلان مأخذ مهم فراموش شده است. با وجود این، مطابق الگوی منتنی از هوشمندی، آنچه در کتاب اهمیت دارد سودمندی و تناسب آن با زندگی است. جالب و متناسب یافتن گفتار افلاتون و اپیکور و کمک سریع آنها به ما برای غلبه بر نگرانی و تنهایی خودمان، ارزشی بیشتر از بیان دقیق های افلاطون یا آرای اپیکور دارد. نویسندگان کتاب‌های علوم انسانی نه نسبت به صحت شپعلمی آثار خود، بلکه نسبت به خوشبختی و تندرستی ما مسئولند. منتنی نارضایتی خود از مخالفان این عقیده را نشان داد. پژوهانی که دغدغه آنها داوری درباره کتاب هاست غیر از علم هیچ ارزشی را به رسمیت نمی‌شناسند. و هیچ فعالیت فکری غیر از دانش پژوهی و فضل فروشی را مجاز نمیدانند. اسکیپیو را با شخص دیگری اشتباه بگیرید به آن وقت دیگر هیچ چیز با ارزشی برای گفتن ندارید به نظر آنها ناتوانی در شناخت عرستو مساوی است با ناتوانی در شناخت خودتان مقالات مونتنی سرشار از نقل قولهای غلط انتصابهای نادرست انحراف غیرمنطقی استدلال و ناتوانی در تعریف حدود است. مونتنی از این مسئله ناراحت نبود. من در خانه در عمق ییلاق می نویسم. جایی که هیچ کس مرا کمک یا کارم را تصحیح کند و جایی که معمولا هرگز هیچ یک از معاشرانم حتی معادل لاتین دعای پروردگار ما عیسی مسیح را هم نمیداند. تا چه رسد به زبان فرانسه درست؟ طبیعتا اشتباهاتی در کتاب وجود داشت. منتنی با افتخار می گفت من سرشار از آنها هستم. ولی تعداد آنها برای محکوم کردن مقالات کافی نبود. درست همانطور که صحت این مقالات نمی توانست ارزش آنها را تضمین کند. نگارش چیزی غیر حکیمانه از اشتباه گرفتن اسکیپیو آمیلیانوس که حدود سال 158 الى 129 قبل از میلاد میزیست اسکیپیو آفریكانوس که در حدود 236 الا 183 قبل از میلاد میزیست گناه بزرگتری بود بنده چهار افراد باهوش از کجا باید عقاید خود را به دست از افرادی که حتی از آنها هم باهوشتر هستند آنها باید وقت خود را به نقل و تفسیر سخنان مراجع بزرگی اختصاص دهند که رتبه های بالاتری در درخت معرفت دارند باید رسالهایی درباره اندیشه اخلاقی افلاتون یا اخلاقیات کیک رو بنویسند مونتنی به شدت وامدار این عقیده بود در مقالات تعداد زیادی تفسیر و صدها نقل و قول از نویسندگانی وجود دارد که به نظر مونتنی مطالب را دقیقتر و امیختر از او فهمیده بودند او در این کتاب 128 بار از افلاتون 149 بار از لوکرتیوس و سی بار از سنکا نقل قول کرد. این امر وسوسه کننده است که از نویسندگانی نقل قول کنیم که درست همان افکار ما را با شفافیت و صحت ای بیان می کنند که ما نمی توانیم به پای آن برسیم. آنها ما را از خودمان بهتر می شنازند. چیزی را که ما مبهم و مقشوش بیان می کنیم با ایجاز و دقت مطرح می کنند. در هواشی کتاب کتاب‌های آنها و وامگیری‌های ما از ایشان نشان میدهد که کجا تکیه از خودمان را پیدا می‌کنیم. یکی دو جمله ای که درست از همان خمیره یافکار ماست. اگر این اثر در اثر لباس تگا و قربانی کردن حیوانات نوشته شده باشد، این هماهنگی و همخانی شگفت آورتر می می‌شود. ما این کلمات را در کتاب خود نقل می‌کنیم تا نسبت به یادآوری واقعیت خودمان به خودمان عدای احترام کنیم. ولی کتاب بزرگ ممکن است به جای روشن ساختن انتظارات ما و ترغیب ما به کشف خودمان مشکل آفرین شوند. این کتاب ها سبب شوند جنبه‌های از زندگی خود را که هیچ شاهد و گواه چاپ شده ای ندارند فراموش کنیم. آنها می توانند به جای وسعت بخشیدن به افقهای ما به طرز ای به این افقها محدود من کنند. منتنی مردی را می شناخت که به نظر می اشقش عشقش به کتاب به بهای زیادی تمام شده است. هرگاه از این آشنای خود می به من بگوید درباره فلان چیز چه میداند، می کتابی را به من نشان دهد تا در لغتنامهش معانی واجه های دلمه و باسن را پیدا نکن. جرعت نمی کند به من بگوید که روی باسنش دلمه دارد اگر می برای بیان همه توانایی‌های خود به کتابها اتکا کنیم و اگر کتابها تمام دلمه های ما را می این بیمیلی به اعتماد به تجربیات فراکتابی خودمان دردناک نبود ولی همانطور که منتنی فهمید کتابهای بزرگ درباره بسیاری از موضوعات سکوت می کنند. به گونه‌ای که اگر به آنها اجازه دهیم حدود و سغور کنچکاوی ما را تعین کنند از ارتقای افکار ما جلوگیری خواهند کرد ملاقاتی در ایتالیا تبلور این موضوع بود در پیسا مرد محترمی را دیدم که چنان طرفتار عرستو بود که اساسی ترین آموزش این بود که سنگ محک و معیار سنجش تمام عقاید صحیح و همه ی حقایق همخانی با تعالیم ارسطو است و خارج از این تعالیم همه چیز واهی و موهوم است. ارسطو همه چیز را دیده و همه کار کرده است. البته ارسطو چیزهای زیادی را دیده و کارهای زیادی کرده است. در بین تمام متفکران دوران باستان شاید ارسطو جامعترین آنها بوده باشد و آثارش دامنه وسیعی از دانش را در بر میگیرد. در باب کون و فساد، در باب ها، کائنات جو در باب نفس، اعضای جانوران، حرکات جانوران، سوفستیقا یا رد مقالطات، اخلاق نیکوماخوس فیزیک و سیاست. ولی همین گستردگی دستاورد ارستو میراس مشکل بر برچای گذاشت. نویسندگانی وجود دارند که بسیار حوشمند از آن هستند که به درد ما بخورند. آنها بسیار حرف زده اند و به نظر میرسد حرف آخر را زده اند. نبوغ آنها مانع از احساس بی احترامی به آنها می شود. یعنی همان احساسی که برای کار خلاقانه اخلافشان حیاتی است. این نوعی پارادکس است که عرستو کسانی را که بیشترین احترام را برایش قائل بودند، از عمل به شیوه خودش بازداشته است. تنها دلیل عظمت او تردید درباره بخش امدهی از دانش پیش از خودش بود، نه خودداری از مطالعه ای افلاتون و هراکلیتوس بلکه انتقادی شدید از بعضی زعفهای آنها بر اساس درک قوتهایشان عمل به شیوهی کاملا ارستوی همان چیزی که منتنی میفهمید و مرد پیسایی درک نمیکرد یعنی اینکه در برخی موارد خود را مجاز بدانیم که حتی از موفق ترین مراجع به طور ای جدا شویم با این همه میتوان درک کرد که چرا ترجیح میدهیم به جای اینکه خودمان حرف بزنیم و فکر کنیم نقل قول بیاوریم و تفسیر بنویسیم نوشتن تفسیر بر کتاب نویسنده دیگر هرچند از نظر فنی کار دشواری است و به ساعت تحقیق و تفسیر نیاز دارد از حملات ناعادلانه که ممکن است نصیب آثار اسیر شود در امان است میتوان از مفسران به دلیل قصور آنها در رعایت انصاف در حق آرای متفکران بزرگ انتقاد کرد ولی نمیتوان آنها را مسئول آن آرا شمرد به همین دلیل بود که مونتنی آن همه نقل قول و عبارت های تفسیری در مقالات گنجانید گاهی اوقات از دیگران میخواهم چیزی را بگویند که خودم نمیتوانم به علت نارسایی کلام آن را به این خوبی بیان کن. و گاهی به دلیل ضعف قوه اقلانی هم و گاهی برای مهار جسورانه انتقادات عجولانهی که به تمام آثار به ویژه آثار متأخر نویسندگان زنده حمله می کنند من مجبورم زعفهای خود را در زیر آن شهرتهای زیاد پنهان کنم. آور است که چند قرن پس از مرگ بسیار بیشتر جدی گرفته می شویم. هر جمله‌ای که از قلم پر نویسندگان دوران باستان تراویده باشد مقبول است ولی اگر نویسندگان معاصر همان جملات را بیان کنند مورد تمسخر قرار می‌گیرند منتقدان نمی‌خواهند در برابر آرای صاحبتر هم ای های سابق خود تسلیم شوند به این افراد اجازه نخواهند داد که مانند فیلسوفان دوران باستان سخن بگویند سنکا می‌گوید هیچ انسانی از پرداخت جریمه تولد خود خلاص نشده است ولی کسی که در اعثار بعدی با چنین احساسی روبرو شود حق ندارد چنین حرفی بزند مگر اینکه به شدت میل داشته باشد که تحقیر شود منتنی چنین نبود و پس از اینکه در سایه فیلسوفان دوران باستان پناه گرفت در انتهای مقالات به آسیب پذیری و ضعف این کتاب اعتراف کرد اگر آنقدر اعتماد به نفس داشتم که کاری را انجام میدادم که واقعا میخواستم می هرچه هر چه بادا باد آباد و کاملا تنها صحبت میکردم. اگر مانطنی اعتماد به نفس نداشت به این علت بود که کسی که از نظر زمانی و مکانی به اون نزدگتر بود، کمتر احتمال داشت افکارش را به اندازه سنکا و افلاتون معتبر بداند. به نظر گاسکوی ها خنددار است که ببینند کتابم چاپ شده است. هرچه کسانی که مرا میشناسند از خانه دورتر باشند، به همان اندازه در نظرشان ارزشمندتر خواهم بود. خانواده و خدمتکارانش یعنی کسانی که صدای خور و پف او را میشنیدند یا ملافه ها را عوض می کردند یک احترامی را که در پاریس برای مانتنی قائل بودند به رسمیت نمی شناختند تا چه رسد به احترام زیادی که دیگران پس از مرگش برای او قائل شدند. انسان می مایه شگفتی جهان باشد ولی زنش و خدمتکارانش هیچ چیز قابل ای در اون نبینند. معدودی از انسان هام شگفتی خانواده خود بودند. می به این مسئله از دو زاویه نگاه کنیم. اینکه هیچ کسی واقعا شگفت آور نیست، ولی فقط خانواده و خدمتکارانش آنقدر به اون نزدیک هستن که این واقعیت ناامید کننده را تشخیص میدهند. یا اینکه بسیاری از مردم جالب و شگفت آور هستند ولی اگر از نظر زمانی و مکانی خیلی به ما نزدیک باشند به احتمال زیاد آنها را چندان جدی نمیگیریم. زیرا علیه آنچه حاضر و آماده است سوگیری عجیبی داریم منتنی به حال خود تأسف نمیخورد. خورد برعکس به نظر او انتقاد از آثار جاحتربانه تر معاصر نشانه گرایش زیانبار به این عقیده بود که حقیقت باید همواره از ما دور باشد یعنی در جای دیگر، در کتابخانهای باستانی، در کتاب های کسانی که مدتها قبل زندگی می کرده اند. مسئله این است که آیا فقط معدودی از نوابقی که در فاصله بنای پارتنان و سقوط روم میزیستند، به چیزهای واقعا ارزشمند دسترسی اند یا اینکه همانطور که منتنی با شهامت می من و شما هم میتوانیم به آن چیزها دسترسی داشته باشیم. منتنی به یک منبع حکمت بسیار عجیب و غریب پی برده بود عجیب و قریب تر از خوک دریا نورده مورد نظر پرهون یا سرخپوست پوسته توپیایی یا کشاورز گاز کنی یعنی خاننده مونتنی تلویهن میگوید گوید که اگر ما به تجربیات خود درست توجه کنیم و یاد بگیریم که خود را نامزدهای مناسبی برای زندگی اقلانی بدانیم همگی می توانیم بینش هایی پیدا کنیم که به اندازه بینش های موجود در کتاب های بزرگ باستانی جرف است. قبول این فکر آسان نیست. ما یاد گرفته این فضیلت را حاصل اطاعت از کتاب های نویسندگان بزرگ بدانیم. در حالی که باید مجلداتی را بررسی کنیم که روزانه به وسیله ساز و کارهای ادراکی درون خودمان به تحریر در می آیند. منتنی سعی کرد ما را به خودمان بازگردانم. می دانیم چگونه بگوییم. کی که رو این را گفته. این به نظر افلاطون اخلاقی است. اینها دقیقا همان کلمات عرستو هستند. ولی خودمان چه چیزی برای گفتن داریم؟ ارزشیابی ها و داوری های خودمان چیست؟ ما در چه کاری هستیم؟ توتی هم می تواند به خوبی ما صحبت کند. اگر بخواهیم دانش پژوهانه سخن بگوییم نمی توانیم نگارش تفسیر را توتیوار صحبت کردن بدانیم. می توان با استدلالهای زیادی نشان داد که نوشتن شرح و تفسیر درباره اندیشه اخلاقی افلاتون یا اخلاقی یا تکیکه رو کاری با ارزش است. ولی مونطنی بر ملالاور و بزدلانه بودن این کار ترکید می کرد. در آثار دست دوم مهارت کمی وجود دارد. رجحان سخن سخنافرینی بر نقل قول، واصف است. دشواری نگارش تفسیر فنی است و این کار به صبر و تحمل و کتابخوانی آرام نیاز دارد. افزون بر این بسیاری از کتاب‌هایی که سنت دانشپژوهی ما را به تقلید توتیوار از آنها تشویق می‌کند، فی نفس جذاب نیستند. این کتاب‌ها به این دلیل در مرکز برنامه درسی قرار گرفتند که آثار نویسندگان معتبری هستند در حالی که بسیاری از مزامینی که در برنامه درسی گنجاندو نمی‌شوند به همان اندازه یا بسیار بیشتر معتبرند و علت هز و این مزامین از برنامه‌های درسی این است که هیچ مرجع فکری بزرگی به آنها نپرداخته است مدت هاست که رابطه هنر و واقعیت موضوع فلسفی مهم می شمرده می‌شود یکی از دلایل این امر آن است که اولین بار افلاتون به این مسئله پرداخته ولی کسی رابطه کمروی و ظاهر افراد را مهم نمی‌داند و یکی از دلایل این امر آن است که هیچ از فیلسوفان دوران باستان به این مسئله توجه نکردند. با توجه به این احترام غیر طبیعی که برای سنت قائل هستیم، مونتنی تصور میکرد خوب است به خانندگانش اقرار کند که در واقع به نظر او آثار افلاتون ممکن است کوته فکرانه و کسالت آور باشد. آیا اصر ما حرمت شکنی گستاخانه مرا می بخشد که فکر می مکالمات او؟ به زور و لنگ لنگان و به شیوهی طاقت فرسا به موضوع خود می پردازند و اینکه افسوس می‌خوارم چرا مردی که آن همه چیزهای بهتر برای گفتن داشته وقت خود را برای مباحثههای تمهیدی بیفایده طولانی تلف کرده است. روبرو شدن با این فکر مونتنی مایه آرامش خاطر است اینکه نویسنده معتبر به سوی زنهای ناگفته و بر زبان نیامده نسبت به نویسنده معتبر دیگری اعتبار می‌بخشد. در مورد کیکرو حتی نیازی به اصرخاهی پیش از حمله نبود عبارتهای مقدماتی او تعاریف او تقسیمات فرعی او و ریش شناسی های او اکثر کارش را میبلند اگر ساعتی را صرف خواندن آثار او کنم که همین یک ساعت هم برای من بسیار زیاد است و بعد ببینم چه جوهر و مایه‌ای از او بیرون کشیده ام اکثر اوقات جز باد چیزی نمی به نظر منتنی، اگر دانش این همه به آثار کلاسیک توجه کرده اند، این کار ناشی از این میل متکبرانه بوده که می‌خواستند دیگران تصور کنند که آنها هم به دلیل ارتباط با این اسامی معتبر هوشمند هستند. نتیجه چنین این کاری برای عموم کتابخانان چیزی نبوده غیر از کوهی از کتابهای بسیار غیر حکیمانه و به شدت فضل فروشانه. بیش از هر موضوع دیگری، درباره کتابها کتاب ها کتاب وجود دارد تنها کاری که انجام می دهیم نویسی بر یکدیگر است تنها چیزی که وجود دارد انبوهی از تفاصیر است ما با کمبود نویسندگان اصیل روبرو هستیم ولی مونتنی تاکید می کند که در هر زندگی می آرای جالبی یافت داستانهای زندگی ما هرقدر پیش پا افتاده باشد باز هم از مطالعه زندگی خودمان بینش‌های جرفتری به دست می‌آوریم تا از مطالعه همه کتاب‌های قدیمی. اگر دانشپژوه خوبی بودم، به اندازه کافی چیزهایی در تجربه شخصیم پیدا می‌کردم که مرا حکیم سازد. هر که آخرین عصبانیتش را به یاد آورد، زشتی این هیجان را بهتر از عرستو در درمی‌یابد. هر که بیماری‌های خود را به خاطر آورد، همان بیماری‌هایی که او را به خطر انداختند و همان وقایع پیش پا ای که او را از حالتی به حالت دیگر انداختند خود را برای وقایع غیر بعدی و بررسی حالت خود آماده می‌سازد حتی زندگی سزار هم کمتر از زندگی خودمان در خور تقلید است زندگی خواه شاهانه خواه کارگر معابانه؟ همواره متأثر از هر چیزی است که ممکن است برای انسان اتفاق بیفتد فقط فرهنگ دانش‌پژوهانه هراس‌آوری ما را مجبور می‌کند جور دیگری فکر کنیم ما هر یک از ما قنیتر از چیزی هستیم که تصور میکنیم. همه ما می‌توانیم به آرای حکیمان دستیابیم. مشروط به اینکه خود را به دلیل دو هزار سال نبودن بیعلاقگی به مکالمات افلاطون و علاقه به زندگی آرام در ییلاق برای این منظور نامناسب و نالایق ندانیم. شما می توانید کل فلسفه اخلاق را درست به اندازه زندگی خصوصی غنیتر به زندگی خصوصی معمولی پیوند دهید. شاید به خاطر فهماندن همین مطلب به ما بود که مانطنی آن همه اطلاعات دقیق درباره معمولی و خصوصی بودن زندگی خودش بیان کرد. چرا می خواست به ما بگوید کسیب سیب دوست ندارد من به هیچ میوهای غیر از خربوزه علاقه چندانی ندارم که رابطه پیچیدهی با ترپچه دارد ابتدا دریافتم که مزاق من با ترپچه سازگار است بعد عکس این مطلب را دریافتم حالا دوباره ترپچه با مزاق من سازگار است که پیش رفته ترین روش بهداشت دندان را به کار میبندد دندان‌هایم همواره کاملاً سالم بودند از دوران طفولیت یاد گرفتم که آنها را با دستمال سفرم بمالم هم پس از بیدار شدن از خواب و هم قبل و بعد از غذا که خیلی سریع غذا می‌خورد به علت عجلم اقرب زبانم و گاه و بیگاه انگشت‌هایم را گاز می‌گیرم که از تمیز کردن دهانش لذت می‌برم میتوانم به اندازه کافی به راحتی بدون وجود رومیزی غذا بخورم ولی بدون دستمال سفرهی تمیز غذا خوردن را بسیار ناراحت کننده میابم افسوس می خورم که آداب و رسومی را که پادشاهان ما آغاز کرده اند ادامه نداده ایم. یعنی آداب و رسوم تعویز دستمال سفره ها مثل بشقاب ها با هر وعده غذا شاید این مسائل پیش پا افتاده باشند ولی به طور نمادین یاداوری می کنند که یک من متفکر پشت کتابش وجود دارد و اینکه این فلسفه اخلاق از شخصی معمولی صادر شده که به میوه علاقه ای ندارد و بنابر این دوباره ممکن است از دیگر اشخاص معمولی صادر شود اگر به طور ظاهری هیچ گونه شباهتی به متفکران گذشته نداریم نباید مایوس شویم در تصویری که منتنی دوباره از انسان نیمه اقلانی لایق ترسیم کرده میتوان یونانی بلد نبود، نفخ کرد، پس از غذا تغییر فکر داد، از کتابها خسته شد، هیچ از فیلسوفان دوران باستان را نشناخت و اسکیپیوها را با هم اشتباه گرفت. همین که زندگی معمولی با فضیلتی در طلب حکمت، ولی هرگز نچندان دور از حماقت داشته باشیم دستاوردی کافی است